نفرین شدن موجودات سرزمین پریان اعضای شورای ارل دوان دوان از تپه پایین آمدند و به درون سایه و روشن غروب رفتند سایه و روشن خاکستری دره بر فراز مه برخواست از رود لمیده بود اما هوا سنگینی افزونتر از سنگینی رمز و راز سایه و روشن داشت سوسوی روشنایی‌های زود رات ها نشان میداد که همه مردم در خانه اند و خیابان از هر موجود انسانی خالی بود مگر هنگامی که فرمان روایشان اوریون را خاموش و با گامهایی کم و بیش نهانکارانه همچون سایه بلندی دیدند که به همراه اشباه شبانه خلنگزار در پشت سرش به سوی خانه جنها می رفت و به هیچ اندیشه زمینی فکر نمی کرد. و این غرابت که روز به روز گسترده تر شده بود روستا را ترسناک کرده بود. بنابراین آن دوازده پیرمرد با نفسهای تند و سخت به سوی خانه شتافتند و بدین ترتیب به جایگاه مقدس نجات دهنده آمدند که در انتهای روستا رو به تپه جادوگر قرار داشت و همان ساعتی بود که نجات دهنده عادت داشت سرود پس از پرندگان را برگزار کند. این نام را بر ای گذاشته بود که پس از بازگشتن تمامی پرندگان به خانه در جایگاه مقدس می خاندند. اما نجات دهنده در جایگاه مقدسش نبود. در هوای سرد شبانه بر بالای تپه ها بیرون جایگاه مقدسش ایستاده بود و چهرهش به سوی سرزمین پریان بود. ردای مقدسش را با های بنفشش پوشیده بود و تسبیح زرین را به گردنش آویخته بود. اما در جایگاه مقدس بسته بود و پشت به آن ایستاده بود. از دیدن او در آن حیبت شگفت زده شدند. در شگفتیشان نجات دهنده با صدایی واضح در غروب و چشمهایی به شرق جایی که هم اکنون چند ستاره زود رست می درخشیدند زمزمه را آغاز کرد. همچنان که سرش را بالا گرفته بود چنان سخن می گفت که گویی صدایش می تواند از صد شفق بگذرد و به گوش مردم سرزمین پریان برسد گفت نفرین بر تمامی موجودات سرگردان که جایگاهشان بر روی زمین نیست نفرین بر تمامی روشنایه هایی که در زمین های و مردابی ساکن هستند خانه آنها در جرفای خلنگزار است بگذار به هیچ دلیلی تا فاپس این روز از آنجا بیرون نیایند بگذار در جایشان و در انتظار سرنوشت شومشان بمانند نفرین بر غولها، جنها، پریان و دیوهای روی زمین و تمامی ارواح آب و نفرین بر فونها و آنان که همچون پان هستند پاورقی فون در دوره باستان روم خدایان روستایی و جنگلی و مساهبان ها بودند آنها نیم انسان و نیم بوز و دارای شاخ و سوم بز بودند پان در یونان باستان خدای شبانان و گله ها بود او را به صورت خدای نیمی انسانی و نیمی حیوان تصور می کردند ادامه داستان و نفرین بر هر آنچه جز انسان‌ها یا جانوران بر زمین میزید، نفرین بر پریان و تمامی داستانهای گفته شده درباره آنها و نفرین بر هر آنچه پیش از برآمدن خورشید سبززارها را افسون می‌کند و تمامی افسانه‌های گفته شده از راویان مشکوک افسانه‌هایی که انسانها را از زمانهای تقدیس نشده بازگو می‌کنند نفرین بر جاروهایی که جایشان را در کنار آتشدان ترک می‌کنند نفرین بر جادوگران و هر گونه جادوگری نفرین بر حلقه‌های های سمی و هر آنچه با آنها می‌رقصد و بر تمامی روشنایی‌های غریب، های غریب،, غریب، سایه‌های غریب یا شایعاتی که به آنها اشاره می‌کنند و بر تمامی موجودات وهمالود غروب و بر موجوداتی که کودکان بداموخته شده از آنها می‌هراسند و بر قصه‌های پیرزنان و کارهایی که در شبهای نیمه تابستان انجام می‌شود نفرین بر تمامی این چیزها، نفرین بر هر چیز وابسته به سرزمین پریان و هر هرانچه از آنجا می آید هیچ کوچه ای در روستا، هیچ انباری نبود که دست کم یکی از اشباه روشن خلنگزار به چابوکی بر بالای آن نرقصد شب از آنها زرندود بود، اما هنگامی که نجات دهنده سخن میگفت از نفرین هایش واپس نشستند و پس از اینکه اندکی دورتر رفتند دوباره به رقص در آمدند. در حالی که نجات دهنده بر بالای پله‌های جایگاه مقدسش ایستاده بود در جلو و پشت سر و در هر سویش میرقصیدند بنابراین این ای از تاریکی احاطهش کرده بود و ماورای آن دایره روشنایی‌های خلنگزارهای سرزمین پریان می‌درخشیدند و در میان دایره تاریکی که نجات دهنده در وسط آن ایستاده بود و نفرین می کرد، هیچ موجود تقدیس نشده ای و هیچ امر غریب شبانه ای و هیچ نجوایی از صداهای ناشناخته یا آوای هیچ موسیقی ناآمده از سکونتگاه انسانها وجود نداشت. در آنجا همه چیز مرتب و آشنا بود و هیچ رمز و رازی سکوت را بر هم زد، مگر آنکه به انسان نیز اجازه اش داده شده باشد و ماورای آن دایره که با خشم سوزان نفرینهای نیک مرد بسیار گسترده شده بود اشباه روشن خلنگزار بلوایی به پا کرده بودند و در آن شب شگفتیهای بسیاری از سرزمین پریان به آنجا فرو میریخت و دیوها جشن گرفته بودند چون این خبر به سرزمین پریان رسیده بود که مردم جالبی در ایرل زندگی می کنند و موجودات افسانهای بسیاری، حیولاهای استورعی بسیاری از میان مرز شفق به این سو خزیده به ایرل آمده بودند تا ببینند و روشنایی های اما سمیمی اشباه روشن خلنگزار با آن رقص آمدن آنها را خوش آمد می گفت. و تنها جنها و اشباه روشن خلنگزار این موجودات را از سرزمین افسانهایشان به این سوی مرزی که به ندرت از آن میگذشتند فرا نخوانده بودند بلکه اشتیاقها و اندیشه های نیز که نیمی از آن به ناب میراسش با موجودات استوره همخان و با حیولاهای سرزمین پریان هم نژاد بود اینک آنها را فرا میخاند از همان روزی که در کنار مرز شفق بین زمین و سرزمین پریان پرسه زده بود اشتیاقش به مادرش بیشتر و بیشتر شده بود و اینک چه میخواست و چه نمی‌خواست اندیشه‌های پریانه اش پیشاوندان مقیم در تپه‌های سرزمین پریانش را فرا میخواند و در آن ساعت که صدای شیپورها از میان مرز شفق به گوشش رسید این موجودات در پی صدای شیپورها آمده بودند چون اندیشه‌های پریانه به همان اندازه برای موجودات سرزمین پریان آشنا هستند که دیوها برای جنها در آرامش و تاریکی نیک نیکمرد دوازده مرد خاموش ایستاده بودند و به هر واژه گوش می‌دادند و برای برایشان دلپذیر و آرامبخش و درست می‌نمود چون از جادوی بیش از حد خسته شده بودند اما ماورای حلقه تاریکی در میان درخشش اشباه روشن خلنگزار که سراسر شب سوسو می زدند، در میان خنده دیوها و شادی افسار گسیخته جنها در جایی که تمامی افسانه های زنده و داستان ترسناک راستین می در میان همه گونه اسرار، در میان صداهای غریب، شکلهای غریب و سایه های غریب، اوریون با سکهایش به سوی شرق به سوی سرزمین پریان می رفت. سفر به دنیای پر رمز و راز ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگرها سفر به سرزمین های جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا, <ماجر> در های زیر دریا. <مازم> <مازم> همه اینها و بیش از این ها <مازم> در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی